برسول اللَّهِ صالح طیبین و طافرین المحصومین و و عجید و مشاهدین و الحمد و رحمت و رحمت تا البته که کلمات ایشون در سبع تحسین میشه یکی از اقوام که پنج قولد مثلا نال کردن ولی پشما دادن ان کی ال اول سال و, و سال نشدن دوم تغییر خود ایشون بود که خلاصش اینه اگه خبر وارد وجهت بشه تحقیق میشه مثل کتاب مثلا تخصصی کتاب باشه و ثبوت این قسمتشم اشکالاتی بود که اون طرف قائد بودن که تخصیصیم در اون اشکالات رو جعب داد این خلاصه کلماتیشان بر این ها آن بخون مراجعه بفهمن از کردیم که حالا بر اینکه که این محلت توضیح بیشتری داره بشه اولا به لحاظ تاریخی روشن شد که زاگران اولین موردی که مسئله تخصیصه کتاب به خبر واحد مطلق شد همون جریان حضرت زده و انکار قصدی فدک و الاخردی انکار معنا که اونایی که منکر بودن که نیست و اون مقدار یعنی که عرصه بساطی عرص نیست باید برگرده بانوان سرد و این مطلب رو از عبارت درکشی در بحر محیط دیروز هم خوندید تصادفاً آخر مسئله هم داره یک بحثی داره در آخر مسئله صفحه پونسر در همین کتاب البحر محیط بعد ایشون میگه ولیکن نه صحیح میشه خبر عموم کتاب رو به خبر با تخصیص در لعجماع صحابت علیه فیمسار برگرمون در مسئله رو به اجماع صحابه اون وقت مثل نفی میراسل قاتل به قول هی لایرسل قاتل با عمومات کتاب و اونها به وایتی دارن از عبیر قریره هم هست مونه هسته در ایشونه که لایرشمه ها رجل و بینن مرعته و همهت ها ما قائل نیستیم تصیل خاصی رو باید ما بعد بعد در اونجا داره که شاید مخالف اینطور طور که این خبر متواتر بوده لایر سبقات بحث خبر واحد مستعیش شد این خبر. بله من میگه فقیل لهم قدرم و صدیق انا معاشر الانبیاء لا و تره رو میراث فاطمه رضی الله عنها البته این حضرت کردنی آلا تره مسئله بیهیم صورت کردن الا الله همسران فیغم هم برم ترک کرده <تصفيق> اینطور نیستی باید میگوید از زهر آقا چون حضرت در بعض از مسادرشون هست که آیشم توازای کرد که پدر همون جواب دادی حالا جواب گفتن پس این که از از زهر آقا چون از زهر تک دختر بودن اما خب میراث زن هم بود برای با وجود دختر باهه زن هم زوجه هم ارس بوده پس این که فقط میراس حضرت زهر آقا ش فقالو جواب دادن کانو علی مزالک می این در کتاب کلامی هم می بحث در حدود چالیشی هم به مناسبت بعد از رقضت بیقنبر مسئله شده کانو علی مزالک خود صحابه می دونستن. و انما بکره همون هم ستیب. عبو بکر را بیاد آوری کرده اللہ خودمان یعنی عده آمدن بالا بردن که این مطلب مسلم بوده پیش صحابه قلنا. خب اگر این متواتر بود یا همه این صحابه بیدونستن شده خود از ذهره نمیدونستن نه حالت میشون کنن نمیشتی لکان لن یخف علا فاطمه این نباید بر حضر زهره محفی بشه یا متواتر بشه بلکه خب اونا حتما نقل نکردن حضر زهره در صفحه بخودشون رد کنن مطلب برن این که لن یخف علا فاطمه چطور برد تأجبابره که اینا سهل کردن محقه و نیوی مذهبی بدن خب لن یه فرادا مثال نبی از ذهبایی که نبود اون طرف پسته هم بود اگر این تواطر رو ادعا می کردن خب برای زنهای دیگه پیغمبر هم باید روشن بوده اینکه این که به قوله و ذهبه این مسئله اکتفاد علایی که تماکان این رو نقلی کردن به این که صحابه اجماع صحابه هست. حالا این راجع به مسئله راجب به اقوال که معلوم استاد پنج قول بردن و این قولها رو به علمای سنی نسبت دادن دوست همونطور اکیشون فرمودن یعنی یکیش جوازه که دعای اجماعشون فرمودن یکیش هم من و تفاصیل دیگری که هست این من فقط یک مقدار برای این که روشن بشه قائل عرض میکنن قول اول که جواز از سالا خونده شد قول جواز در این کتاب یجوز و تخصیص و عموم کتاب خبر واحد این در به جمهور نسبت میده وقبا منقول این مثل اول یعنی علما شد در این مطلب اتفاق داشت. بعد میگه القول سانی المن و مطلقا مطلقا درست نیست و بهی قال بعض الحنابله بعد نقل کرده قضالی در منخول عن المعتزله اگر از معتزله باشه معتزله خبر رو حجت میمیدن زنان اشتباه شده این فرض با فرض حجیت خبره اصولا این مسئله با فرض حجیت خبره خبر یا نمیدن اگر خبر حجت نمیدن اگر برد خبر داره لان الخبر لا یقتع به اصله کم به خلاف از این عبارت هم معلوم میشه نقطه همونیست که من رو مستاد چند بار تکرار فرموزن این که خبر زنیست و قرآن قطعی زنی نمیشه قطعی رو مثلا تخصیص دیم شبه معروفی مذنه شد ولیکن و نقله و ابن برهان انطاعفت من المتکلمین و الفوها ها لعزی به من از اونها اون بخش هایی از اصول که تحت تاثیر کلام قرار گرفته اونها هم منکر شدند بله اون و ایشون جوابی که میده خود اثرات کتاب که جایز میدونه شریحه استدلال مرحوم استاد لن انا تعالی امرنا به اتباع نبیه خدا ان فرمود درباره اتباع رسول ظاهر او این همون بحثی بود که من دیروز عرض کردم مثلا ادهی از احضر سنت میگفتن مهمه رو حجیر خبر این که ابتداعا یک سنت رو ثابت میکنه اما تخصیص نمیتونه بزنه این تاخل وجه ثبت از وین بین ما سخلا با تخصیص همان نمیم کنه اگر تخصیص برش داخل نشده مراد از تخصیص تخصیص اقیی یعنی قصه تخصیص ف این لامی از خلهر یا بقای را و مازد خلهرو بقیه مجازن و زاو فدلاالتش شبیه این حضام از هم آستان این توجیه نعکن جواب که مجاز نیست، اونو برای تخصیص مجاز و نقل او هنی ایساب نه ابان از ایساب نه ابان از اولاموشو نعکده بعدها شبیهونه نقل بخون از کریی ایراز الله ایساب نه او و حدود یک صفحه راجب که اصلا مراد این شخص چیه مراد اون کرخی چیه اصلا این قول چیه حقیقت چیه صرف بحث کرده که خیلی فایده ای نداره برای کارایی که ما الان به محل, محل کلان ماست قول چهارون تحسیز اگر به دلیل منفصل باشه درسته به منفصل باشه نه این رو به کرخی نصفر داده اونجای چیلی شبیه مونم در اونجای کرخی نه این وجه و هم استاد قدس الله نفسه متعرض شدن یعنی این وجه تخصیص بین متصل و متصل هم مرحوم استاد قدس الله نفسه پنجم این از که تعبود به این مطلب امکان داره اما واقع نشده بله یه قولی هم داره که امکان داره اما من ازش شد این هم از بعضی ها قولش شما الوق حالا خود وقت هم میینی چی صبح غیر به معنا لا عذری وقت یعنیث ما نمیدونیم به عام کتابی ع بکنیم یا به خبر مخصص و غیل به معنا نهوه یاق تا آارست فیزال کلقدر الذيدللعلوم ال ثبات و خصوص الان نحیه یعنی اون مقداری که، آم دلاته بر اصلاح کشیم با اون مقضاق خاص با همیگه تعارض پیدا میکنن. کنم حکم متعارضین برش بار می مراد از وقت یعنی اجراء حکم متعارضین اون وقت دیگه آل توضیح داده که از کردن اینجا جای بحث ما نیست و فعیم کردن یک مقضاقی بحث رو ببرن روی مسئله به اصلاح صحابه و اجمال سه از زهرا و تخفیص عام کتابی به این روایتی که ابو بکر نقل کرده این خلاصه اقوال در مسئله و حقا معروف با استاد ما در میان علمای شیعه این تفصیل رو نداریم در میان علمای شیعه تحصیل ما در حقیقت اینه یا مثل سید مرتضی قائل به وجوب خبر نیست و های قائل به تخفیض هم نیستید این یا قائل به وجوب خبرن اگر قائل بروز جده خبر شدن باید به لوازمش هم منتظم شدن که از اون لوازمش تخصیصی کتابه طبعا یکی از لوازمش هم نسخ کتابه لیکن این روشون ادعای اجماع کردن این یکی خارجه و مردم استاد از این راه وارد شدن که چرا نسخ نمیشه کرد و تخصیص میشه کرد دلیلشون، دلیل لبی و اجماع، اجماع بر مسئله قائمه یعنی این است که اگر اجماع نبود ما قبول میکردیم و به خاطر اجماع رفعیت میکنیم اما این نحوه استدلال که از دوستان سرمودن با اون مبانیشون این مبانیشون مبانی مبانی در حجت خبر است که خبر به خاطر سیره اغلا حجت سیره قطعی اغلا این حجت اغلایی ها اگر حجت اغلایی شد دیگه اون مسئله این که حالا اجماع علما در کجا هست در کجا نیست این چندان تأثیر نداره اگر سیره شد بناه شد سیره نگاه بکنیم و چون از شاره مقدس دلیل خاصی و تخصیص های عباده خب مطلقا باید, باید باشه. اگر بناش سیره اوغلا در بعض از موارد ثابت نباشه به خاطر نهی شریع و اجماع خب تو قدر مسئله تخصیص اختلافیه؟ خودم است تفسیر نقد با قلوشون است واقعه وقتی اختلاف می شه شموله سیره دیگه مشکل میشه یعنی به عباراتی اخرى قدر مصیبت قناعت سیره در جای میشه که بکنه ارتدادی باشه مثل オフィスه و قرر مثلا یه مثال مثلا لوکس و حریر و این جور چیزایی که حکم ابتدایی است اما در جایی که بخواد عموم قرآن رو تخصیص بزنه دیگه چون این سیره اذن توبه و اصلاح دلیل تعبودیست عزه از, از علمان منکر هستن این یعنی خبروارد در که حجت نیست علایه حاله اهل سنن اگر اجماع قائلا و با اجماع خارج میکنن چون دلیل حجی از آیه نبعه به شما هست این مخلوق خود دقت بفرمایی در هر مسئله ترارا من در از کارم که شما مخیلی وارد بشید، اول دلیلیتون در اصل مسئله واضح کنید بعد در فروع مسئله واضح بشید اصل دلیلیتون برخواست خبر چیه؟ اگر اصل دلیلیتون آیه نوهه که خبر عدل باشه خب موگی خبر عدل بود جسده است و که به تعبود الهی و چون علماء بفتند در نفس جاری نمیشه پس باز یک تعبودی دیگه شامل نفس نمیشه اما اگه دلیلی شما سیره شد سیره دیگه فرق نداره نسخ و تخصیص نمیذاره که چه فرق می فرق می فرقی میذاره سیره اوغلا فرق بین نسخ و تخصیص نمیذاره سیره قطعی به تعبیر ایشان اگر دلیل سیره شد و نقطه نقطه سیره شد دیگه فرقی بین اینجا نمی کنه پس اگر در اساس اصل به اجماع خارج بشه تخصیص هم به اختلاف خارج میشه چون شمول سیره دیگه مشخص میشه کنه که دقیقا به هر حال حالا ما از خیلی وقتی قول ما خود ما اشکالات اول دوباره استاد وارد نکنیم ببینیم اصل بحث چیه اصل صحبت و اگر مسئله مسئله صحابه و اون مطالب باشه خب اینه مطلب سانویس و اون یک صحبت که متاسفانه اهل سنت در اینجا در راجب صحابه بیشتر جهات طبیعت احساسات و عواطف و خیالات و اوهام و عالم از ایکیسی شون گیرن برادی این دیگه مثلا عادل میشه چه میشه چه؟ خب معلوم اینا رو با هیچ برهان عقلی یا نقلی نمیشه اثبات کرد نمون آیاتی که اینها وردن narrative ها نه اون رو با کی اشاره هم داره مثلا اون چین مثالی که انسان اونجوری که رسول الله پیدا کرد عادل بشه سره بشه, بشه. عالم بشه پسون ولو غیر او اعلم او در میان صحابه به اتفاقشون موجود باشه ما از قول اون رو بگیریم دیگه انسان نترد منجرد این که را رسول الله خب انصافش را از میخواد بحث ترش بکنیم یه مطلب خیلی عقلیه، دیگه یه مطلبی سو رسوله عقل و وجدان و انصاف چه این مطلبی خارجه با قطع نظر از این جهت و بحث صحابه این باید خب همون تحریق علمی و اصولی بشه عرض شد در بحث حجه ده خبر سه مصطعه اساسی وجود داره و خبر رکنه اساسی فقر و حقیقت همین این بحث حجه خبره چون ما حتی قسمت زیادی از تفسیر آیات را هم از خبر داریم و این تو این مسئله باید تمریه کافی از اول انجام بشه و نکتش هم روشن بشه ما ارز کردیم در باب خبر سه رعی اساسی وجود داریم بین علمای اسلام رأی اول این است که خبر حجه تعبودی داره دقت کنید و مراد از حجیت تعبدی و صورت‌نظریه موجیات تعبدی یعنی شاره مقدس یا هر قانونی میاد یک معیار رو نگاه میکنه میگه هر جا این معیار وجود داشت اون مطلب حجت این میشه حجیت تعبدی و نظام اساس حجیت تعبدی جعل معیار تا محیار نیامن وجه تعبودی معنا نداره جا محیار آمن میشه وجه تعبود مثلا اهل سنت مشروعشون قالت که محیار عبده که باشه قرار وجه تعبودن شاره گفت. میخواست برای ما وصوب بیاد نه خوب یه خط بکنید میخواست بر برای مسابقت دلو بکنید یا نه این نفته اینجاست همین که عادل مثلی گفت ما باید به او قبول بکنیم اینجا اکن اون به نبین فا تبینون یعنی اگر آدل آمد دیگه قبول کنی تبین نکنید فست نکنید فست نکنید یعنی قبول بکنید این الان من اینجا میام تأکید میکنم یعنی با وجود این معیار دیگه شما تعبد به این پیدا و لذا هم اون مسئله معروف که معداری خبر بخم الله ظاهری میشه این نقطه این که نوعبای خبر رو چون میگه شار آمده ما تحبات کرد بلکه بعضی ها توان بسیر رسائل هم قدم رو بالاتر گذاشتن قاعده به یک نوع تحول هستن یک نقلال انتقال یعنی تحول یعنی ما اساسا افتداعا مکلطیم به احکام شریع لیکن بعد از تحبات به حجیب خبر این تفریف ما اول میشه مکلطی به معده خبر این دیگه خیلی بالا رفت ما ابتداعا مکلفی به احکام شریعت بعد از اینکه شارع آمد و ما خبر رو کرد تکلیف ما عوض شد از, شد از معده شریعت به مسئله معده خبر از احکام شریعت معده خبر این زرافت کار روشن شد مثلا مرموم اصطاق قایل به حجیت تحبودی خبر هستند. اما به چه میاد؟ به میاد اینکه که خبر سقه نه خبر سقه رو حجیت میدانن تحبودن و شعره هم رو انزار کرده که نتیجه میده حجیت خبر سقه اون شده حجیت خبر است. اما چون مرمون استاد زیر بنایه به سیره اغلا خب ایشون به حضور میدونن سیره اغلا تحول برد نمیداره که در مسئله جمع بین این حکم ظاهری یا واقعی اونجا میفرم میفرم ما در معده خبر تعبط داریم به قبولش اما حکم ظاهر نمیشه ما حکم ظاهری نداریم اصلا چی برصیل این که به تحبال که وظیفه ما اول میشه خب در اصلا ما این میشه که اون چی که خبر گفت قبول کنیم شبیه این تصور هم توی هم یا محجم هست تو مسئله صحت ماه پیش اهل سنت و وقوف بعرفا مثلا این تصور میاد که وقوف بعرفا در روایات روز نهم باید باشه اما اون اینه الا از هامزه الناس و ما موخرن ناس اصلا که وظیفه عوض شد هر وقت مردم ایستادن روز عرفه اون عرفه ها میگه نهم باشه هشتم باشه دهم باشه دوازدهم باشه, دوم باشه. ما کار بودن داریم که تخلیف ما از روز نه هم رفت یک تخلیف جدید ولی اگر ما این تصور رو بکنیم از اون حدیث حدیث زیاده به منظر عبال معناش این میشه که اصولا امام میفرمایه نگاه که مردم کی شما که ایستازن باید شما میزیدی که الان روز هشت همه روز نه همه روز ده همه روز یاد ده همه هم. مهم نیست روز هست همین که مردم ایستادن میشه روز حرفه این وقوف این روز و رضا برزردین آیم ها ما هم گفتن با علم و خلاف هم همون وقوف رو با اونها کافیستان بس از هم به ظاهر حدیث کردن ما تحلیل کردیم بسید ممکن است مراد اونا این باشه که در شعالت تاریخی هم دارن نمیخوام مراد اون بحث باشن به مناسبه پس منابراین خوب یک خط بکنی مثل قابلن که سیره تحوض درست نمیکنه، کنه سیره جعل نمی کنه سیره این مرحله حقیقت حجیت و حجیت چند سولانی داره یعنی چند بارم از این بحث بسیار مهمیه، میه یعنی اساس بحثایی و این بحثه لذا مرمون استاد میفرام که ما حکم ظاهری نداریم اصلا ما داره حضاره میسیم این خبرت شنش تریریتیه ولیده چون شنش تریریتیه این بحث مطرح شده که معنی جعلو بجیه به چی به حل و سنت از دیگه بطن خبر یعنی این یعنی وزیفه شما الان معد خبره یه باشتاش داره مطلب براتون روشن میشه یک مش... اشکال کار در حقیقت تفسیر و حجیته کسا حجیته میشید حجیت در فهم و در جاهایی چون مطلب داره یک جهت موضوعی یعنی داره موضوعیت یا عنوانی داره یک حیثیتی داره این معقوله مثل حجیت قوله خاطی چرا معقوله و خاطر این قاضی یک ملصب اجتماعی یک حالت علمی مذارن برای شخص قرار داده شده گفته شده دو نفر که با هم اختلاف دارند بر رفع اختلاف دارن پیش قاضی اینجا حدیقی این معنی میخواد برای شما این پیدا بشه یا نه چون اگه قاضی رو بکن کرد یکی از پرسیم بباقی خودشون این مطلبی که گفتیشون خلاف آمنون هستن درست نید؟ به خود قاضی اگر این مطلب ادامه بیدار خب اختلاف رو ادامه بیدار میکنه, خب ادامه بیدار میکنه. برای حتم ماده خلاف باید یکنی یعنی باید ماده خلاف برای حتم چون وجود اختلاف همیشه در جامعه مذره اگر جعل حجیت نکن روشن شد این چون این محلت که از مسائل ارکان اساسی و حسوله تا حقیقت و اجید تون روشن نشه کاری نمیشون انجام بریم پس مثل قول بازی مثل قول استاندار استاندار اینجور, اینجور گفتنام باید انجام بریم یه نه قبول نه استاندار خلاف بخشنامه وزیر کشور گفته این رو میگن نه شما قبول بکنی یعنی برای اجرای به اصطلاح امر اجتماع جامعه این کار باید انجام بشه ولی زا خود دفت میکنید آیا حجید خبر از همین عدیل مثل قول قاطعی اونی که معتدل اشکال داشتن یا اونی که ابن قبل میگفت مستحیله چونه که خبرشه همش طریقیتی موضوعیت نداره این مجرد یک پولیس برای شما به واقع یه به واقع این مثل حجید قول وکی حجید قول قاضی حجید قول استاندا حجید قول وزیر وجزغه ول ولی مثل اینا نیست اینا منتبن اینا خصوصیتی دارن دقیق میفهمید خبر شنش سرده ترده بهلاصه معنای این حکیه چیه مثلا مرحوم نایینی خب اکثر ما بعضی از اهل سنت معنای حکم زاری الاصل تقد موعده خبر گفت میاد میشه رای دوم مرحوم نایینی میگه حکیه تقسیم کشه چون این خودش کاشفه چه از فرصه این معنای حجیت تطمیم و کشفه خب این کمان باید باید بحث اصولی بشه که اصلا کاشفیت قابل تطمیم من دیاله وارید بخش خودمون فرص این در کتاب کفایه حجیت و جعل منجزیت و معذریت میدونه پس نداریم مرحوم شیخ همساری حجیت و یک نفعه از مسجحه سلوکی میدونه از این بحث حجیت بحث بحث داره. یکی از فروعش مسئله تخصیص عموم کتاب خبر واحده این باید اول ریشه های اون وحث روشن بشه بعد از روشن شدن ریشه های اون بحث باید بیه. خب الان شما ما در روحات استادم کنه بیشترین اشکارش این کتاب قطعی خبر زنیه. ها می توانم جوابن درست زنی زن معتبر زنی معتبر با منطقه خلاصه ایدار اون جواب این هم اون اشکال هم جواب. اون اشکال اون هم جواب یا آمدن گفتن که خبر اگر در یک سننه اقتداییه باشه تحصیل اثبات میکنه اما اگر در تحصیل کتاب باشه نه اون هم گفتن اگر حجی ازامن هر اثبات میکنه این مطلب باید تحلیل بشه این باید تحلیل بشه. چرا تحلیل باید باشه تحلیلش اینه که برمیده به حقیقت حجیت پس مبنای اول بر با من یک توضیح اجمالی از کردن حجیت تعبدی خبر وقتی این حجیت تعبدی خبر الان روشن شد براتون دو برداشت کلی هست یعنی در اینجا یکی مثل آمنه و مثل مقروم ساحب وسائل مثلا ساحب وسائل مضمونشون اینه که خبری ای که در کتب مشهور باشه رو از اسکندر کتاب کتاب الخزا و مقدمه قرعا ملاذ رحم یه بابی داره باب روجه خبر واحد باب 9 11 حالا یکی از این باب هاست در ازش بیشتر یهو جهت تعبدی چرا یکی دو روایت این داره مضمون اینه که اگر اون نوشتا یکی از اینه که ما کتب اصحاب رو پیدا میکنیم و این کتب اصحاب مثلا تریه بوده مخفی کردن حالا پیدا کردیم امام صادق ها چون مشهوره به نهاد کتب حقه میگه ائمه عليهم السلام به ما تعبد دادن این نکته است کلا جواب است پس به نظر ایشان ائمه عليهم السلام تعبد دادن که اگر کتابی مشهور نوشتاری مشهوره از اون ما نعم بکنه اهل سنت گفتم خدا به ما سعبد داده این جا اکن خاسقون به نبه این تو تباییمون. یعنی خبر آبه. پس یک تفکر کلی این است که شاره اقتداعا آمده جعل حجیت کرده با اون معیار و معییم. این یک تفکر کنی. یک تفکر دیگه مثل مرموم اصطاق میگه شاره این کارو نکرده. اغلاق بهمیدن. اغلاق برنافین برینه. بنای اغلاب این است که اگر راوی سقه بود حرفش را تعبدن قبول کنه. البته خب ما چراراً در محلش از خیلی مناسبه اشاره کردیم اصولاً داشتن تعبد اغلایی در اموری که شعنشون طریقیت سرفه خیلی مشکله یه یک مقدر شعنش طریقیت سرفه نیست مثل قول طبیب یک طبیب به شوان که مثلا دهده نهده دارید که نحل به خرابی داره. چرا؟ چون قوضه خبر خبرصرف نیست بر برحبسه بر اشتهاده بر نقطه های علمیه اون را هم ممکنه وقالا قبول بکنن که میکنن به اصاف حجید و قول عهده خوبه ببینید اینا یکی یکی خوب تحلیل بکنید یا حالا در سنیم جوانی هستی خباید این که بخواییم تدزیز و فرماییم خودشون به یک تناهتی داره مثل قول قاضی که الان توضیح قول قاضی مجرد خبر صرف و طریق صرف نیست، منصف اجتماعی هم هست و هدف از او رفع اختلافه پس مهند کنم کجاست یه خبری که فقط طریق صرفه میگم آقا من آمادم در حرم بخصه بود یکی من آقا در حرم باز بود این فقط طریق صرفه این خوب تعمل رو کن. آیا در جایی که طریق صرفه بدون اینکه یک مسلحت خاصی باشه بدونی که یک موضوعیتی باشه بدونی که یک نکته‌ای باشه آیا واقعا اصلا کار نداریم به دعوه‌ی تعبد از طرف بعضی استاد اصولا عقلات این جوجا تعبد دارن تعبدی دارن چون تعبدات اوغلایی یا به اصطلاح یک نکته‌ای برگرده مثلا یا مثلا اختلافی در جامعه میاد مشکل برای جامعه میاد جامعه رو تریشان میکنه یا پس که برگرده به این جهت که این تخصص داره خبرمیت داره به یه نکتی باید برگرده بدون برگشت به یه نکتی با این که میدونن این ممکن است مخالف واقع نباشه وشمار به واقع نرسونه بیان تعبد بکنن اصولاً تعبدهای اغلایی مبنیست در یک ملاکات اجتماعی بله اگر گفتن ما خوب دقیق کنیم خبر استقر قبول نکنیم در 780 مورد با مشکل برخورد می‌کنیم، هرج لازم میاد و عسر لازم میاد، مش خب معقوله. اختلال نظام، اول قبول نکن. چی اختلال نظام کشونه؟ فرض کنید یک رادیو در اصلاح نظام دیگانه، سیف خبر داد، هیچ‌چیزی که قبول نکرد، نه عسر، نه عسر لازم میاد. یا حتی رادیو داخلی خبر رو قبول نکرد، نه عسر لازم میاد، نه اختلال نظامی لازم. این مطلب که مرمون و استاد تمسا کردن در ادهی کسی و اغلا ما اصولا روی شئی بررسی کردیم اصلا تعبود در اموری که طریقیت صرف داره هیچ نقطه غیر از طریقیت نه یعنی چی؟ میاخته یعنی چی؟ اصلا اغلا چین این میکنن؟ بگن تو چشمتر ببنگوش دبن؟ ها سریع چیز ببوچه هست چرا میپسن چرا چی اختلال لازم میان خب ممکن است بگین چون وساقت داره بله راسته چون وساقت داره ممکن است برای انسان وسوخ پیدا بشه خیلی از جهاز سخه اگر خبردار 90% پس به معیار وسوخ بدون تعبد 90% باشه خیلی جهاز سخه اگر خبردار وسوخ پیدا میشه مهم کلام در جاییست که این وسوخ به 90% نکن مهم کلام اینه در تعبد مثلا خبر صحیحی داشتیم و علما بزرگان و علما به استثنای چند نفر که ایراد کردن خب طبیعتاً برای اینها وصول کردن میاد 90 درصد که اینجاست میشه 60 درصد سوال از استاد اینه این 60 درصد رو با که بناشون که حجیت وصوله این 60 درصد رو چطور فور میکنم بقول مرحوم علینی تقسیم کجاست این تقسیم و کجاست یعنی فور کردن 60 درصد چرا میگه چون بابا چون سقه بود شد شد درسته اگر خبر ضعیف بود و اصحاب اعراض کردن ده درصدش شد تازه شد درصد چون سقه بود. بود چون سقه بود شد شد درصد. اگر اعراض اصحاب بود و خبر هم ضعیف بود اونجا ده درصد در به زور پیدا میشه دقیق بسا احتمال ضعیب میدیم این خبر برست باشه اونجا نوبت ده درصده دیگه اونجا نوبت شهد درصد خوده به ساعت شهد درصد براتون تو با این راز اون سی درصد چطور فرمی کنیم؟ ایشو بفن تعبود اغلایی خب چه تعبودی؟ اغلا در طریقیت چه تعبودی؟ تو گفت بکنیم؟ ارسن شد اون روح خبر وارد؟ به جای این که ای, ای که هستی که نیست اصلا قبل از اون ریشهی بحث بکنید اصولا اغلا در اموری که طریقیت صرف داره و هیچ نقطه خاص اجتماعی نداره اختلال نظام هر جمعه هرز، هرست ای نداره حالا خبر زراره قبول کردن کل اخبار ایشان بیس درصدش مخالف با مشوره، 20 درصد قبول نگردید اصلا خبر یک سری در امور اجتماعی کاران به خبر روزم یک آقای بزرگوار مسائلی گفت ما در 80 درصدش از کلام که برای ما وصول آمد 90 درصدی در 20 درصد ما چی لازم میاد اما از رادیوها تلویزیون ها خارجی داخلی خبر میگن چه داخلیش چه خارجیش ما از خبر ها وصول پیدا نمیکنیم باید اصلا نمی کنیم حالا اگر قبول نکردیم تعهد نکردیم قول تعوذ نکردین خرج و مرج میاد هرج لازم میاد عفر لازم میاد عصب لازم اختلال نظام لازم میاد در شریعت ایواش شما که غالبا اینو غیر شریعت که غالبا میون در قفان میونن به شخص ثغرز و عسود برای ما پیدا میشه اما گاهی هم نمیشه سوال اینه اینجا فلسفه چیکار بگویم ا شد سوال چیه روح مطلب روشن شد این بحث طولانی حرارت و این تعارض هر بودی شی که استاد فرمودن ببینید تصویر شما اگر مخهم بگین حجتت باید بگین اوغلا یک نقطه گفتن 60 درصد رو 90 درصد 60 درصد رو بکن 90 سوال چرا در یک امر که طریقی صرفه 60 درصد بشه 90 نه ما مشاهده گفتم ببین با این در این مورد به خصوص حتی تلویزیون داخلی یا خارجی یا خبری بود حالا اون تلویزیون داخلی ما خودم با شواهد نمی‌بینیم صرف این خبر رو 60 درصد چون چه بود چه چرت ما چرا رو کنیم صد چرا؟ او سؤال که برای اوحلا که گفره که فیده نمیشه؟ چرا؟ این کجا لازم بیاد لگ بشه همین؟ چرا؟ هرچی که نه سقیلشون رو خب بگیم ما از کردیم از خبر سقیل نوزه از برای ما وصول پیدا میشه حالا در ای شد 60% اگر به سرقه هم نبود ای شد این به خاطر وساقت 60% به 60% خوب تصور بکنید به خاطر وساقت 60% به 60% اگر وساقت هم نبود شد, شد, نبودی شد چی که طریقیت سرق میگین خبروییت توش مطمئن طبیب بحث سنگ نیست. اون خبروییت من بهش اضافه می یه خبر صرف نیست یه این خبر رو استاندار میگه بله چون منصف. یه این خبر رو وکیل آقا میگه بله چون رکالت به زمیمه میشه خوب دقت رو کنی یه این خبر رو قاضی میگه قاضی میگه حکم اینه بله حتی فتوا. فتوا فتوای فقی خبر صرف نیم فتوای فقی حکم الله از دیگاه خودشه اونم تکمیل میکنه خبروییت تکمیل میکنه پس فرد کلام چیه؟ طرف ثوبه باشه در یک مورد خبرش با بعضی از شواهد نمی‌سازه 60 درصد شد چرا شما ما آوردیم 80 90 درصد می‌گین چرا غلا بیان بگن اون بشه 80 درصد شما زن نوعی یا طبونه؟ بله زن نوعی زن نوعی ما خرید و شخصی نداری اون زن نوعی در نصف اصلا در جایی که تعوض نمیشه ظواهر الفاظ دیگه زهر بعد اینجا اصلا این تعوض چرا بیا یعنی اوغلا میخواد بگن آقا ما مئیار ما رسوغه چون بگی من رسوغ دارم به شواهد و اوغلایی رسوغ دارم بسیار با توس بارم اما اینجا رسوغ پیدا نکردی چرا بیانید؟ شما از خود قاضی رسوغ پیدا نکرد سلام اما با قبول بکنید اون منصب غذابت سیدر ساده پر میکنه یک طبیعی به شما گفت ما آسیما به داریم شما میمونم رسوغ مدام به ه ما گفتید اما ده درصد چون تبیزه شد شد درصد نوید درصد میگن اون خبرویت فرمی میکنه اون خبرویت این سی درصد رو فرمی میکنه اما یک کسی آمد گفت در حرم الان بست شد شواهد معید نیست کلاماتو روز درسی و نکته خاصی از روز در حرم او نه او حالا بگن تو چون این گفته بکنی شد درصد نوید درصد این صحبه سریعه. <تصفيق> مثلا این آقا گفته در حرم آبا منذار بخوام مثلا سه چهار نفر افراد که سقه نیستن نه اینکه سقه نیستن آما داری گفته ناخل گفته از قول افراد برسته بهش طبعا قول سری که این پیدا میکنه دیگه اون وصوبه نوز در تا اصلا معنا دار تعبد تصویر اول تعبده بکنی بعد دیگه ثابت از یاده معنا داره فی نفسه به قول مقام سبوت کار به مقام اصفات خیلن نداشته باشید اصلا معنا داره که بیان اقلا در اینجا به ما تعبد بدن در چیزی که شعنش طریقیت سرده چیز دیگه اگه هم نیست. بله ممکن است بگید که شارع مقدس یا یک قانونگذار میاد این تعبد رو میکنه به خاطر مخلط سلوکی به تعلیم شه. به خاطر تأخیر تأخیر وثاقت و ماهو وثاقت اون مصلحه به تأخیر بهش اضافه شود یعنی اگر بنابشه مردم کوفه منبر بنشینن در هر امری بیان تا مدین سوال بپرن مشکل امام میفرمان اداشته بده علی که امام فعلی که با عادل جان زواره ممکنه از زوار سوال بکنه شطر زا ممکنه چرا به خاطر اینکه یک به اون رو باید فرض اختلاف شده یک اختلاف در چیه نوشه؟ دو مثلت تکیر این قبول خوبه قصد بکنی اینا قبوله به خاطر مثلت تکیر به خاطر عدم اختلاف اینا همه ملات ها دیان که اغلاهی و ارزم کردیم اگر این ملاقات قبول بکنی این نتیجهش نه منجزیت و معذریت نه تکیمه کشمه این نتیجهش عبارت از یک نوع مصالح سلوکی که شیخ فرموده. ازات مصالح سلوکی رو ازالا آخر بحث الان کردم کلام ارجو کنن مرحوم نایمی و بقیه استاد انشاءلادی رو شیخ کردن. ما اون تصویر مصالح سلوکی رو براتون عرض می‌کنم که اون انشاءلاد هم منتفی بشه. مصالح سلوکی فرقش با مصالح اون مصلوب خود اون مطلب مثلا اگر ضروره گفت لحمه گوش خرگوش حرامه. گوشت خربوشت حرام بودن به هلال بودنش مسلحه واقعی اما مسلحه سلوکی یعنی مسلحه این که من خبر زورا رو گوش بکنم یک یعنی مسلحه اجتماعی این داتا رو فرق فرموز داریم واقعی آرزو بر خودشیل میشن مساله اجتماعی آرز بر هیئت اجتماعی میشن پس محورشون رو میتین نیست ببینید شما این سنگ ها و آجرها. یک بحثی این که خودش تک تک آجرها قویه محکم ماده شی گچ یکی این که رابطه‌ای که بین آجرها صاف یا نه دیوار صاف یا نه ممکنه آجرها از فاز خاکستر باشه بسیار خراب باشه بد باشه اما صاف چینده برده بالا ممکنه آجرهای در یک باشه کج چینده چیده دیوار پس یک چیزی قائمه به خود اون شیئه اون مصالح واقعی یکی قاهمه به سلوکه اون یک مسلحه اجتماعی اینه که مرموم انداره گفته این مسلحه سلوکی با مسلحه مسلوک مندت میشه یکی میشه کسو این کتار. نه نه مندت میشه نه کسو این کسو میشه اون لحن ارنب در واقع خودش مسلحه و مسلحه داره اون رفتی به خبر زرار رو نداره. خبر ضرر برای صعودت هم در جامعه ایشی است. این میگه مسلحه سلوکی ولی که شیعه در پشار نه که که دارن خود امام بخواستن اختلاف بده شد شبهه پیدا شد پس مخلحه سلوکی یک مخلحه ایست که برقیعت اجتماعی آرز میشه خب از سنه داره ما تأثیر ما از من, از من این تعبیر من که تفسیر ما از مصلحه سلوکی نه می خوام بگم شیخ مراد نصریه کیه ما اینجور تفسیر کردیم که اون اشکالات وارد نشه چی ها خب هم مصلحه سلوکی و مصلحه تفسیر یکیه یعنی ها همین میگه مصلحه تفسیر با مصلحه سلوکی با اونی که من میگم مصلحتیه که متعلقش هیئت اجتماعی دقیقاً هیئت اجتماعی پس این مثلت با مثلت دیگر از خود لحمه ارنبه هست یا مثلت دیگر همه مندخ نمیشه دو چیگر دیوار صافه این با مثلت خدا آجور مندخ نمیشه دیوار که جماعه و وجه. خود ذات آجور یک مثلت نیست اون هیئت اجتماعی مثلت دیگر, دیگر ممکنه خبر با خود جذب مثل قول قاضی قول قاضی بر رفع اختلاف در جامعه خبر با خود جذب بکنن برای تسیل آن و اما خبر رو فقط با انوانی که خبره خب بخیر این نکته اینه خبر با اونوانی که فقط خبره و طریق صرفه این نکته برای تعوذ داره یا نه امام. از امام و غیر امام ما قائم امام میشه به نظر کدوم دو معنای اساسی هست مبناه اول شارع تعبود بکن اون معقوله نه نمیگه این رو نه اجازه بگیم شا میگم اگر شارع آمد گفت شما تعبودن خبر و اعصره را قبول بکنه بحث آلخوی تعبود و اغلالیست سوال من نکته از که این سلوک در تعهد به این اخبار ان و ان امام این تعقی مصلحته خیلی خب ببینید شما اونجا قائل هستین که شاره آمد که جعل که جعل تعبد کنه ما میگیم شاره چطور در امریکا سلوک طبیعی ترخه جعل تعبد میکنه تفسیر میکنیم به مصلحتی سلوکی موضوع همون موضوعیت پیدا میکنه موضوعیت موضوعیت پیدا، یعنی نقطه پیدا می کن. نقطه که پیدا کنم میشه مثلا رسول. بحث دوم، بحث ما این نیست بحث این شای خوبی که اغلا تحبود دارن یعنی بحث ای که نیست که بحث ما اینه که اغلا در جایی تحبود دارن که نکته ای باشه جایی که طریق سرکه اغلا تحبود ندارن معلوم نیست آقای ناینی قایل به حجیت تحبادی خبر سخه باید نه من تصویر و قایل نشیدن من نشیدن من نشیدن یک کمی دیر این کار ما را مشکل کرد ببینید من بحث از اول ببینید آه این بحثیان خیلی مهمه اشکال نداره تکرار روش یک گفتیم در مسلکه حجیت تحبادی دو مسلکه یه مسلکه کسان شاره ابتداعا تحباد آورده مثل اهل سنت، مثل مرحوم صاحب و اینو این اصلا میاد شارعه به ما گفته خبری که در کتاب مشهور قبول کنی خب، بخش اینجا میاد که ما چجور این ت... تعبد رو تفسیر بکنی آیا معنایی که گفت قبول بکنی جعل حکم بکن زالری، جعل مماسله، پسیم کشف جعل منجزیه نه، به نظر ما وقتی شارعه بیاده که عمر رو حجزد یک نکته موضوعی داره این تفسیر ما برای جعلش روشن شد این بس ها بحث دوم مبنای خودش که نه این حجیت عقلاییه شاره اون رو امضا کرده سوال این بود شباهت چی اصلا حجیت عقلایی در عملی که تریه دسته ممنوش این سوال اصلا تصور مگر این که باز همون راه رو برن. یعنی یک نکته موضوعی پیدا بکنه. مثل مثلا اختلاف مثل مصدر ترفید این نکته ای بود اما اوغلا بیان میگن طریق به ماهو تعریف مجر امر طریقی این اضافه میشه طریق شرح نشه اصلا من چند دفعه گفتم اونجوری که من معنا میگم مصدر رو شیخ میفرماشه دقیق باید چون هرکم بزرگان مثل ابن حی به شیخ اشکال میکنه ما این تقریب بنده است درشاید در۱ در ده درم تا این تقریب من از ممثللحظ سلوکی نه کل میشهید آم تقراب سفر کنید. به من از مد سلوکی اینه یک مصلحتی قابل است به حییت اجتماعی خوب دقت کنید. شما ممکن است برای هییت اجتماعی انامتظاری سر و ش چیزی نیست اجتماعی هیت اجتماعی چی؟ مجموعه چند تا آادذ پدا قرار میشید ویژه اجتماع این چیزی نیست که داره مسئله باشه. جواب ما اینه که نه اجتماعی هم داره مسائل هم خواسته خود هیئت اجتماعی و لذا به نظر ما اگر مثلا بشر فکور زدگی بکن نقطه اینه رو کسا خبر باید از خود جد داشته جد خود این یه پدیده اجتماعیست اینجوز مقدمات بحث ماست در محضش کرارن گفتیم اصولا حجیت یک پدیده است نه یک پدیده فردی اصلا حجیت در معنای فردی معنا بله شیب در اول رسال داره لاره فی حجیت قد به معنا لزوم العمل لزوم العمل حجیت نیست حجیت نهانه مایسه خود احتجاج به بین مقنن و اون به نسا مکلف این همه حجیت رب به مسئله لزوم العمل نداره اون لزوم العمل على طبق قد حالا خب با همه میگذاره نمیگذاره اون لزوم العمل درست هست اون بحث دیگریه بحث ما در اینجا احتجاجه مایست خود احتجاجه به دقت فرمودید این نکات فنی ما, ما؟ خوبه یعنی میگیم اگر اگه ما مثلا اینو بگیم خوب دقت بکنید اگر دلیلی از شارع آمد مرجعش بونه و اغلا هم اگر بنا بگذارن همونه یعنی تفسیر تعبد هم همونه لاکی نیامده ما اشکال اون که همشین تعبدی نیامده چنین تعبودی نشده می اشکال ما این است که چین تعبودی اما اگر چین تعبودی میشد به مسجد سلوکی تفسیرش میکردیم مثل تعبود به قول بازی این ایک سلوکی داره در رفت سلوکی. یعنی ما حرفمون اینه که حجیت باید برگرده به یک نقطه اجتماعی یک پدیده اجتماعی به یک نقطه اجتماعی برگرده مجردی فصل من توی قار زندگی می کنم یک آیدگیم توی دیگه یه چیزی نرکز سقم بود به مجردی اینکه که نقل بشه و پدیده اجتماعی نباشه اصلا حجیت در اونجا معنا نداره اغلا نمیگن ما یک قاعده داریم که چون سقه هست قبول بکنید ولو در درجه وسوخ نرسید وسوخ را توی شده خیلی از برس حاله شدیم آن میگه عوضه مارو بخواهن